آن قالی خط گر سوی ما نامه نوشتی گردون ورق هستی ما در ننوشتی هر چند که هجران ثمر وصال برآرد دهوان جهان کاش که این تخم نکشیدی آمرزش نقد است کسی را که در اینجا یاریست چفوری و سرای چو بهشتی در مستبعه عشق تنه ام نتوان کرد چون بالش زر نیست بسازیم به خشتی مفروش به باغ ارم و نخوت شداد یک شیشه می و نوش لبی و لب کشتی تا کی غم دنیای دنی دل دانا حیفه است خوبی که شود عاشق زشتی آلودگی خرق خراوی جهانت کو را روی اهل دلی پاک سرشتی از دست چرا هشت سر زلف تو حافظ تقدیر چنین بود چه کردی که نکشیدی